جن خودخواه نوشته ریچارد داکینز فصل هفتم تنظیم خانواده چرا بعضیا میخواهند مراقبت های والدین را از دیگر انواع ایسارگری نسبت به خیشاوند جدا کنند؟ مراقبت والدین بخش مهمی از تولید مست به نظر میرسد در حالی که مثلا ایسارگری نسبت به یک خواهرزادی یا برادرزاد چنین نیست از نظر من، تفاوت واقعا مهمی در اینجا نهفته است اما غالبا مردم این تفاوت را درست تشخیص نمیدهند و دچار اشتباه میشوند آنها تولید مثل و مراقبت های والدین را در یک کفه قرار میدهند و انواع دیگر ایسارگری را در کفه دیگر اما من میخواهم بین به دنیا آوردن افراد جدید از یک سو و توجه به افراد موجود از سوی دیگر تمایز قائل شوم من این فعالیت ها رو به ترتیب بچه آوردم و بچه بزرگ کردن مینامم هر ماشین بقا لازم است دو نوع تصمیم کاملا متفاوت بگیرد. تصمیم مربوط به مراقبت و تصمیم مربوط به بزرگ کردن از این دستن. بچه ای وجود دارد میزان خویشاوندی او با من فلان قدر است. اگر من به او غذا ندم میزان از بین رفتنش به همان قدر است آیا من باید به او غذا بدهم؟ از آن طرف تصمیمهایی مربوط به بچه آوردن چنین چیزهایی هستند. آیا میباید اقدامات لازم را برای به دنیا آوردن یک فرد جدید انجام دهم؟ آیا مثل خودم را تولید کنم؟ نگهداری از بچه و به دنیا آوردن بچه تا حدی از نظر صرف وقت و دیگر امکانات یک شخص با هم در رقابتند. ممکن است لازم باشد فردی تصمیم بگیرد آیا از این بچه مراقبت کنم یا بچه دیگری به دنیا بیاورم؟ بسته به وضعیت گونه ها از نظر بوم شناختی حالت مختلفی از ترکیب بچه آوری و مراقبت می تواند از نظر تکاملی پایدار باشد چیزی که از نظر تکاملی می تواند باسبات باشد راهبرد مراقبت محض است اگر همه افراد همه خود را فقط صرف مراقبت از بچه های موجود کنند، تا آنجا که دیگر هیچ بچه جدیدی به دنیا آورده نشود آن جمعیت خیلی سریع مورد تهاجم افراد جهش یافته قرار میگیرد که در بچه‌آوردن ماهرند. مراقبت فقط وقتی که بخشی از یک راهبرد ترکیبی باشد، میتواند نظر تکاملی با ثبات باشد. حداقل مقداری به دنیا آوردن باید در کار باشد. گونه هایی که آشنایی ما با آنها بیشتر است، پستانداران و پرندگان، مراقبت کنندگان و خوبی هستند. معمولا بعد از اقدام به دنیا آوردن یک بچه جدید برای مراقبت از آن تصمیم گرفته می شود چون در عمل به دنیا آوردن و بزرگ کردن در کنار همند مردم این دو را با هم قاطی می کنند اما همانطور که دیدیم از دیدگاه ژن خودخواه هیچ تمایزی بین مراقبت از بچه ای که برادر آدم باشد و مراقبت از بچه ای که پسر آدم باشد وجود ندارد هر دو بچه نسبت یکسانی با آن فرد دارند اگر شخص مجبور شود تصمیم بگیرد به کدام که از آنها قضا بدهد از نظر ژنی دلیلی وجود ندارد که فرزند خود را انتخاب کند اما از آن طرف علل اصول شما نمیتوانید یک برادر به یا بیاورید فقط وقتی کس دیگری او را به دنیا آورد شما میتوانید از او مراقبت کنید در فصل قبل دیدیم چگونه ماشین بقا در حالت آرمانی باید تصمیم بگیرد که آیا نسبت به افرادی که از قبل وجود دارند ایسارگرانه رفتار بکند یا نه؟ در این فصل به این میپردازیم که آنها چگونه باید تصمیم بگیرند تا فرد جدیدی را به دنیا بیاورند یا نه؟ بحث بیشتر به موضوع است که اختلاف نظر با انتخاب گروه که به آن ترفست یک رو اشاره کردم بالا میگیرد. علت این است که وین ادواردز که مسئولیت اعلام و نظر انتخاب گروه بیشتر بر عهده اوست. آن را در قالب یک نظریه تنظیم جمعیت شهر داد. نظر او این بود که تک تک حیوانات امدن و به خاطر ایسارگری میزان بچه به دنیا آوردن خود را پایین میآورند تا در مجموع به نفع گروه عمل کرده باشند. این فرضیه بسیار جالب است. با آن آنچه افراد بشر بد انجام بدهم خیلی سازگار است. نوع بشر بیش از اندازه بچه دارد. میزان جمعیت به چهار چیز بستگی دارد. تولد، مرگ، کوچ کردن و رفتن و آمدن و ساکن شدن. اگر کل جمعیت مرد نظر باشد، کوچی به درون آن یا به بیرون از آن صورت نمی گیرد. فقط میماند تولدها و مرگ ها. تا وقتی که میانگین تعداد بچه های هر زوج بیش از تایی باشد، که باید با تولید مثل خود به زندگی ادامه دهند تعداد بچههایی که به دنیا می آیند با گذشت سالها با سرعت فضاینده بیشتر می شود در هر نسل آن جمعیت به جای مقدار ماینی از افزایش افزایشی وجود خواهد داشت که بیشتر به نظر می رسد نسبت ثابتی با اندازه جمعیت دارد چون خود اندازه آن آن به افزایش است میزان افزایش هم بزرگتر می شود اگر به چنین روشی اجازه دهند بی کنترل ادامه پیدا کند، اندازه جمعیت به سرعت سر به رقم‌های نجومی می‌زند. از غذا، چیزی که حتی گاهی کسانی که نگران مسائل مربوط به جمعیت هستند نیز متوجهش نمی‌شوند، این است که رشد جمعیت هم به وقتی که افراد بچه دار می می‌شوند و هم به تعداد بچه‌هایشان بستگی دارد. از آنجا که افزایش جمعیت در هر نسل نسبت معینی دارد، اگر فاصله نزه ها را بیشتر کنند، رشد سالانه آن جمعیت کمتر می شود. به جای شعاری مانند دو بچه کافی است، می شود شعاری مانند از سی سالگی شروع کن را گذاشت. اما در هر صورت، رشد فضاینده جمعیت مشکلاتی اساسی به همراه دارد. اتمالا همه ما نمونه از محاسبات وحشتناکی را دیده باشیم که برای ملموس کردن این موضوع به کار می برند. برای مثال، جمعیت فعلی آمریکای جنوبی 300 میلیون نفر است و مدتی است که بسیاری از آنها به سوء تغذیه دچارند اما اگر این جمعیت با سرعت فعلی ادامه پیدا کند در عرض کمتر از 500 سال به جایی میرسد که آدمها بر روی کل سطح آن قاره در وضعیت ایستاده و به صورت فشرده یک قالی انسانی را تشکیل دهند و در هزار سال بعد در بیش از یک میلیون طبقه روی شانه هم بیستند تا دو هزار سال دیگر کوه آدمها که با سرعت نور بالا می رود سر به کرانه های جهان ناشناخته خواهد سایید. احتمالا توجه دارید که این یک مواسبه فرزی است و چنین چیزی به دلایل عملی هرگز واقعا رخ دهد نام بعضی از این دلایل قحطی تا و جنگ است. یا اگر بخت یار ما باشد کنترل موالید است توسل به پیشرفت در علم کشاورزی انقلابهای سبز و مانند آنها راه به جایی نمیبرد افزایش تولیدات کشاورزی ممکن است مسئله را به طور موقتی تخفیف دهد اما با محاسبه ریاضی به یقین راه حلی نیست که در درازمدت کارایی داشته باشد در واقع مانند پیشرفت در علم طب که دامنه بحران را گسترده تر کرده آنها هم با بیشتر کردن سرعت رشد جمعیت اوضاع را بدتر می کنند این یک حقیقت ساده منطقی است که در نبود مهاجرت های گروهی به فضا در سفینه های به تعداد چند میلیون در ثانیه زاد و ولد کنترل نشده یقینا به مرگ وحشتناکی می انجامد به سختی می توان باور کرد رهبرانی که پیروان خود را از استفاده از روشهای موثر برای سقت جنین منع می کنند چنین حقیقت ساده ای را در نیابند آنها ترجیح خود را در مورد روشهای طبیعی کنترل جمعیت اظهار میکنند و روش طبیعی دقیقا همان چیزی است که دارند به آن میرسند چیزی به نام مردن از گرسنگی البته پریشانی خاطری که این محاسبات مربوط به درازماتت ایجاد می‌کنند. ریشه در دل مشغولی ما برای آسایش آینده گونه ما دارد انسان‌ها بعضی‌هاشان این آینده نگری آگاهانه را دارند که از پیش پیامد فاجعه بار جمعیت بیش از اندازه را ببینند فرض اساسی این کتاب این است که در کل جنهای خودخواه ماشینهای بقا را هدایت میکنند و از جنها نمیشود انتظار آینده نگر بودن را داشت نقالب آنها برای رفاه کل گونه ما میتوبد در اینجاست که وین ادواردز راهش را از نظریه پردازان اصولگرای تکامل جدا میکند او فکر میکند برای تکامل یافتن کنترل تولدها به صورت ایثارگران راهی وجود ندارد ای که در وین ادواردز یا در شریک آردری از دیدگاه او داده بران تأکید نشده این است که حجم بزرگی از واقعیتهای موجود مورد توافق است و جای تردید در آن نیست این امر بدیهی است که جمعیت حیوانات در طبیعت با آن سرعت نجومی که به لحاظ نظری امکانش هست افزایش نمییابد گاهی جمعیت حیوانات در طبیعت با میزان تولد و مرگی کم و بیش همپای هم نسبت پایدار میماند در بسیاری موارد که موش قطبی مثال معروفش است جمعیت فرازنشی به دارد گاهی به شدت زیاد و گاهی نزدیک به انقراض کم می شود و این وضعیت پشت هم تکرار می شود حداقل در مورد جمعیتی که در یک منطقه وجود دارد هر از گاهی نتیجه واقعا نابودی است گاهی مانند مورد سیاه کانادایی کاندایی جایی که برورد به دست آمد از روی تعداد خامی است، که توسط شرکت هادسون در سالهای متوالی به فروش میرسد ظاهرا آهنگ نوسان جمعیت یک نواخت است تنها کاری که جمعیت حیوانات نمی کنند این است که بی حساب و کتاب به افزایش خود ادامه دهند تقریبا هرگز حیوانات وحشی بر اثر سن زیاد نمیمیرند قبل از اینکه واقعا فرتود شوند بی غذایی مرض یا شکارگرها به سراغشان میروند. تا این اواخر در مورد انسان همچنین بود بیشتر حیوانات در بچگی میمیرند بسیاری هرگز از مرحله تخم بودن فراتر نمیروند قحطی و دیگر علتهای مرگ دلایل نهاییند برای اینکه چرا جمعیت بی حساب و کتاب زیاد نمیشود اما آنطور که در مورد گونه‌ی خودمان میبینیم ضرورتا دلیلی وجود ندارد که به آن مرحله نرسد اگر حیوانات میزان موالیدشان را کنترل می‌کردند، بیغضایی هرگز پیش نمی آمد. نظر وین ادوارد این است که آنها دقیقا این کار را می کنند. ولی حتی در این مورد هم اختلاف کمتر از آن است که شما بخوندن این کتاب ممکن است با آن برسید. طرفداران نظریه ی خودخوا این آمادگی را دارند که فوراً بپذیرند. حیوانات میزان موالیدشان را تنظیم می کنند. در هر گونه خاصی تعداد بچههایی که در هر شکم زایده می شود و تعداد تخمهایی که گذاشته می شود تقریباً ثابت است. هیچ حیوانی تعداد بچه هایش بیشمار نیست. اختلاف بر سر این نیست که آیا میزان موالید کنترل می شود یا نه؟ اختلاف بر سر این است که چرا کنترل می شود؟ چه فرایندی در انتخاب طبیعی تنظیم خانواده تکامل یافته است؟ به خلاصه خلاصه اختلاف بر سر این است که آیا تنظیم میزان موالید در حیوانات از روی ایسارگری و در مجموع به نفع کل گروه است یا از روی خودخواهی است و منفعت آن به فرد تولید مثل کننده برمیگردد گردد من به ترتیب به این دو نظریه می پردزن. وین ادواردز فرض را بر این گذاشته که افراد از تعدادی که می کمتر بچه می و این در کل به نفع گروه است او متوجه شد که احتمالاً انتخاب طبیعی عادی نمیتواند باعث پیدا شدن یک چنین ایسارگری شده باشد انتخاب طبیعی میزان تولید مثل کمتر از میانگین ظاهرا یک تناقزگویی است بنابراین چونان که در فصل یکم دیدیم او به انتخاب گروه متوصل شد بنا به نظر او احتمال انقراض گروههایی که افرادشان میزان موالید خود را کنترل می کنند کمتر از گروه‌های رقیبی است که اعضایشان به سرعت تولید مثل می کنند داری که منابع غذایی را به خطر میاندازند. به این ترتیب جهان پر از گروه های دارای کنترل موالید می شود آن خویشتنداری که مورد نظر وین ادوارز است در این مفهوم کلی به کنترل موالید منجر می شود اما او بیشتر مت به خشخاش می گذارد. و به این مفهوم کلی می رسد که تمام زندگی اجتماعی را به عنوان سازوکاری برای تنظیم جمعیت در نظر گیرد برای مثال دو ویژگی مهم زندگی اجتماعی در بسیاری از گونه‌های حیوانی داشتن قلمرو و حاکمیت سلسله مراتبی است که قبلا در فصل پنجم به آن اشاره شد. بسیاری از حیوانات وقت و انرژی زیادی را آشکارا به دفاع از محدوده که طبیعت شناسا با آن قلمرو میگویند اختصاص می دهند. این پدیده در حوزه حیوانات بسیار رایج است، نه تنها در پرندگان پستانداران و ماهی ها که در حشرات و حتی در شقایق های دریایی قلمرو ممکن است محبته بزرگ پوشیده از درخت باشد که مثلا در مورد سین محل دانچیدن یک زوج بچه آور است یا مثلا در کاکایی ها یک منطقه بدون هیچ منبع غذایی باشد که در وسط آن لانهی بنا شده است وین ادواردز در مورد حیوانتی که در دفاع از قلم رو به خود می جنگم معتقد است این جنگ بیشتر بسر یک پاداش نمایشی است تا یک پاداش واقعی مثلا یک تکه خورا در بسیاری موارد ماده ها حاضر به جفتگیری با نرهای فاقد قلم رو نیستند در واقع اغلب ماده که جفتش مغلوب شده و قلم روش را از دست داده فورا خود را به طرف پیروز می چسباند حتی در گناه های وفادار به تک همسری ممکن است ماده بیشتر پایبند قلم بی یک نر باشد تا خود او. اگر جمعیت بیش از اندازه زیاد شود، بعضی افراد قلم نخواهند داشت و بنابراین بچه ای نخواهند آورد. پس دستیابی به یک قلمرو از نظر وین ادواردز مثل برنده شدن یک بلیت یا مجوز زادآوری است چون تعداد قلم موجود محدود است. و از طوری است که انگار تعداد محددی مجوز زاد و ولد صادر می شود و ممکن است افراد بر سر دریافت این مجوس ها با هم درگیر شوند. اما تعداد قلمرو موجود تعداد بچههایی را که آن جمعیت در کل می تواند داشته باشد محدود می کنند. مثلا در باغغره در اولین نگاه به نظر می رسد برخی پرنده ها خویشتنداری نشان می دهند. زیرا آنهایی که به قلمرو حاکم نمی شوند نه فقط زادولت می کنند، بلکه ظاهرا از تلاش برای رسیدن به یک قلمرو نیز دست میکشند طوری که انگار این قاده بازی را پذیرفته که اگر تا پایان فصل رقابت یکی از بلیدهای رسمی زاداوری را به دست نیاوری خود در داوطلبان از زاد و ولد خود دادی و در فصل جفتگیری مزاحم خوش اقبال ها نشو تا آنها به کارشان که تکسیر گونه است برسند تفسیر وین ادواردز از سلسله مراتب حاکمیت چنین است در بسیاری از گروههای حیوانات مخصوصاً در اصارت و همچنین در موارد در دنیای آزاد افراد موقعیت یکدیگر را میشناسند و میدانند چه کسانی را میتوانند در مبارزه مغلوب کنند و از چه کسانی معمولا شکست میخورند همونطور که در فصل پنجم دیدیم در مقابل کسانی که میدانند احتمالاً در هر صورت پیروز میشوند سعی میکنند بدون مقاومت تسلیم شود در نتیجه یک طبیعت شناس میتواند سلسله مراتب حاکمیت یا نظام نکزنی چنین نام گرفته زیرا بار اول برای مرغها بکار رفت را به عنوان یک معیار برای طبقهبندی اجتماعی توصیف کند که در آن کس جایگاه خود را میداند و از حد خود تجاوز نمی کند. البته گاهی جنگهای شدید واقعا رخ میدهد و گاهی افراد میتوانند بر کسانی که قبلا بالادستشان بوده ام تسلط پیدا کنند اما در فصل پنجم دیدیم که نتیجه کلی اطاعت بیچونه چرا در رده های پایین است که جنگ های طولانی عملا کمتر رخ میدهد و جراحات خیلی شدید به ندرت پیش می آید. کسان زیادی آن را در درغبختی انتخاب گروه های سرسری یک چیز خوب به شمار میآورند. تفسیر وین ادواردز روی هم رفته بی تر است. برای افراد رده های بالا احتمال زادآوری بیشتر از افراد رده های پایین است یا به این دلیل که ماده ها آنها را بیشتر ترجیح می دهند، یا چون آنها عملاً مانع نزدیک شدن نرهای پایین دست به ماده ها می شوند وین ادوارس تعلق به رده اجتماعی بالا را بلیت دیگری برای اجازه زاد و ولد می دهدند این افراد به جای اینکه برای دست یافتن به ماده ها مستقیما وارد جنگ شوند بر سر جایگاه اجتماعی میجنگند. و بعد اگر نتوانند به جایگاه بالایی در رده اجتماعی دست یابند میپذیرند که از خیر زاد و ولد بگذرند گرچه هر از گاهی از خود تلاشی برای دست یافتن به ردی بالاتر نشان میدهند، ولی در مقابل ماده ها با خیشتنداری رفتار می کنند. و بنابراین می گفت رقابتشان بر سر ماده ها غیر مستقیم است اما همونطور که در مورد رفتار قلمروداری بود، از نظر وین ادواردز نتیجه تندردادن داف داوطلبانه به این قاعده که فقط نرهای رده بالا باید زاد و ولد کنند، این است که جمعیت خیلی سریع زیاد می شود، در عمل، جمعیت ها به جای اینکه بیش از اندازه بچه داشته باشند و بعد متوجه شوند که اشتباه کرده اند، از مبارزات رسمی بر سر جایگاه اجتماعی و قلمرو، به عنوان ابزاری برای محدود کردن اندازی خود استفاده می کنند و سطح جمعیت خود را کمی پایین از حدی نگه می دارند که ممکن است بی در آن تلفات به بارا برد. شاید حیرت آورترین نظر رین ادواردس درباره رفتار نمایشی باشد این واژه را خود او برای نخستین بار بکار برد بسیاری از حیوانات وقت زیادی را در گله دسته یا فوج سپری می کنند در مورد اینکه چرا چنین رفتار تودهای مورد توجه انتخاب طبیعی واقع شده دلایل کم و بیش مختلفی ارائه شده است و بعضی از آنها را در فصل دهم ده شهرق خواهم داد نظر وین ادواردز کاملا چیز دیگری است. او می گوید. وقتی غروب که سارها در دسته های بزرگ جمع میشوند یا وقتی پشای ریز به صورت انبوه روی چارچوب یک دروازه می رقصند به این صورت یک سرشماری از جمعیت خود انجام میدهند چون به باور او افراد به خاطر نفع کل گروه از بچه آوردن خودداری میکنند و وقتی تراکم جمعیت زیاد باشد کمتر زاد و ولد میکنند معقول این است که راهی برای سنجش تراکم جمعیت داشته باشد درست همانطور که دماپای به عنوان بخشی از سازوکار خود به یک دماسنج نیاز دارد از نظر وین ادواردز رفتار نمایشی ایجاد یک تجمع امدی برای مقدور کردن برآورد جمعیت است منظور او برآورد آگاهانه نیست منظور فقط یک سازوکار عصبی یا حرمونی خودکار است که درک حسی افراد از تراکم جمعیتشان را به نظام تولید مثلی آنها رفت می دهد. من سعی کردم در مورد نظری وین ادوارز اگر شده به صورت مختصر حق مطلب را ادا کنم. اگر موفق شده باشم شما حالا باید احساس کنید که ظاهرم پذیرفتنیست. فستای قبل این کتاب باید این آمادگی را در شما ایجاد کرده باشد که به شواهد مطرح شده در نظریه وین ادواردز، گرچه در ظاهر پذیرفتنی باشد شک کنید و متاسفانه شواهد آن خوب نیست. شامل تعداد زیادی نمونههایی است که می تواند به این صورت تفسیر شود. ولی به همان اندازه می شود آن را بر اساس خط و خطوط بنیاد گراتر ژن خودخواه تفسیر کرد. گرچه دیوید لاک بومشناس ورزسته هرگز از آن اسم استفاده نکرد ولی معمار اصلی نظریه ژن خودخواه در تنظیم خانواده او بود. کار او به ویژه بر روی میزان جوجه گذاری پرندگان در محیط آزاد بود. اما به نظریه ها و نتایجی رسید که در کل قابل تعمیم است. هر گونه پرنده میزان گذاری خاص خود را دارد. برای مثال مرغ ماهیقار و گیمو هر بار یک توخ می‌گذارند. بادخورک سه توخ و چرخ ریسه های بزرگ نیم دوجین یا بیشتر. البته در کار اینها تنوع هم وجود دارد بعضی بادخورک ها هر بار فقط دو تخم می‌گذارند. چرخ ریسک های بزرگ ممکن است دوازده تخم بگذارند این فرض منطقی به نظر میرسد که تعداد تخمهایی که هر ماده میگذارد و رویشان می حداقل حداقل تا حدی مثل هر خصوصیت دیگر تحت کنترل جن است. بعضی مثلا ممکن است ژنی برای دو تخم گذاری یک آلل رقیب برای سه تخم علل دیگری برای چهار تخم گذاری و همینطور تا آخر وجود داشته باشد. گرس است در عمل قضیه به همین سادگی باشد. ولی نظریه که جن خودخواه ما رو با می دارد بپرسیم تعداد کدام یک از این جن در خزانه ژنی بیشتر می شود. در ظاهر به نظر می جن چهار تخمگذاری باید بر ژن سه یا دو تخمگذاری برتری داشته باشد. اما، با کمی تعمل متوجه می که استدلال ساده بیشتر یعنی بهتر در اینجا درست در نمیآید بلکه منجر به این توقع می شود که پنج تخم بهتر از 4 تا، ده تا از آن هم بهتر، صد باز هم بهتر و بی نهایت بهترین تعداد. به عبارت دیگر نظر منطقی به یک بی معنایی بدیهی رسد. گذاشتن تعداد زیادی تخم علاوه بر منفعت هزینه هم دارد. تاوان زیاد بچه به دنیا آوردن کیفیت بودن رسیدگی به آنهاست. و نکته مهمی که لاک متوجه آن شد این است که در هر گونه فرضی، در هر وضعیت محیطی باید یک میزان توخنگذاری بهینه وجود داشته باشد. تفاوت او با وین ادواردز در پاسخ به این سوال است که بهینه از دیدگاه چه کسی؟ وین ادواردز میگوید آن حد مطلوب مهم که همه حیوانات بدن رعایت کنند برای گروه در کل حد مطلوب به شمار می آید. لاک می گوید هر فرد خودخواه میزانی را برای توخمگذاری انتخاب می کند تا تعداد بچه را که به بار می آورد به حد اکثر بدساند. اگر مناسبترین میزان میزان توخمگذاری برای بادخورک سه باشد برای لاک به این مفهوم است که هر فردی از آنکه سعی کند چهار بچه پرورش دهد احتمالا در نهایت از رقیب مهدات خود که سعی می کند فقط سه تا داشته باشد بچه کمتری خواهد داشت. دلیل روشن آن این است که غذایی که بین چهار بچه تقسیم می شود بسیار کم است و بعضی از آن بچه ها به بزرگ سالی نمی رسند. این قضیه هم در مورد تقسیم اولیه زرده به چهار تخم و هم در مورد غذایی که بعد از بیرون آمدن از تخم به بچه ها داده می شود صادق است. بر اساس نظر لاک افراد به هر دلیلی غیر از ایثارگری تعداد تقعم خود را تنظیم می کنند این طور نیست که آنها کنترل موالید را به قصد اجتناب از بهره برداری بیش از حد از امکانات گروه انجام دهند موالید را کنترل می کنند تا تعداد بچههایی که واقعا زنده میمانند زیادتر شود این هدف درست مخالف نظری است که ما معمولا به کنترل موالید می میدهیم Amen. <laughs>